حکایت شیادی گیسوان بافت که من علویم و با قافله هجاز به شهر در آمد که از حج همی آیم و قصیدهای پیش ملک برد که من گفتم. نعمت بسیارش فرمود و اکرام کرد تا یکی از نودمای پادشاه که در آن سال از سفر دریا آمده بود، گفت من او را اید از در بصره دیدم معلوم شد که حاجی نیست دیگری گفتا که پدرش نصرانی بود در ملطیه پس او شریف چگونه صورت بندد و شعرش را به دیوان انوری یافتند ملک فرمود تا بزنندش و نافی کنند تا چندین دروغ در هم چرا گفت گفت ای خداوند روی زمین، یک سخن دیگر در خدمت بگویم، اگر راست نباشد، به هر عقوبت که فرمایی سزاوارم، گفت بگو تا آن چیست. گفت قریبی گرت ماست پیش آورد، دو پیمان آب است و یک چمچ دوغ اگر راست میخواهی از من شنو، جهان دیده بسیار گوگت دروگ. ملک را خنده گرفت و گفت از این راست تر سخن در عمر خود نگفتی. فرمود تا آنچه معمول اوست مهیا دارند و به خوشی برود.